قسط های هزار یک شب شب چهل ششم رسولان حدایاب ملک نعمان عرضه داشتند پنجاه کنیز رومی حل پوش و پنجاه غلام که قباهای دیبا در بر و کمربند های زرین در کمر داشتند و هر یک را به گوشندر ای بود زرین و به هر حلقه گوهری بود که به هزار دینار زر همی ارزید ملک هدایا قبول کرد و با وزیران مشورت نمود که رسولان را چه جواب گوییم؟ وزیر سال ای که وزیر دندان نام داشت زمین ببوسید و گفت ای ملک به هزین نیست که به معاونت ملک افریدون سپاه بیارایی و ملک زاد شرکان را سپه سالار کنی و من نیز با ملک زاده می روم و خدمت می کنم و این کار بسی سود دارد نخستین منفعت این است که چون سپاه تو به دشمن ملک روم غالب شود در همه شهرها این کار به نام تو شهرت کند و دشمنان اندیشناک شوند و از جزایر و مغرب زمین تو و هدایا بهر بفرستند و سود دیگر این است که ملک روم به تو پناه آورده اگر او را پناه دهی در همه جا به جوانمردی معروف شوی ملک نعمان را این سخن پسند افتاد و به وزیر خلعت داد و گفت پادشاهان را مثل تو مشیری باید پس ملک نعمان پسر شرکان را بخواست و او را از خواهش رسولان و اشارت وزیر دندان آگاه کرد و او را بسپرد که صلاح جنگ فراهم آورد و سفر را آماده شود و ده هزار مرد کار از سپاهیان بگزیند و با وزیر دندان مخالفت نورزد شرکان در حال به فرمان پدر بشتافت و ده هزار سوار از جمله سپاه برگزید و بسی مال حاضر آورده به سپاه داد و به ایشان سه روز مهلت داد لشکریان زمین بوسیده از آستان بیرون شدند و به تهیه اسباب سفر مشغول گشتند و شرکان نیز به قصر آمده از جنگ فراهم آورد و به استبل رفته اسبان کوه پیکر به در آورد چون روز چهارم شد ملک زاده با سپاهیان در خارج شهر نزول کردند و ملک نعمان نیز بهر وداع پسر به خارج شهر بیامد و هفت خزینه به ملک زاده بزل نمود و رو به وزیر کرده شرکان و لشکر را به دو سپرد و به سوی شهر بازگشت شرکان سپاه را ملاحظه کرد ده هزار تن جز خدم و حشم حاضر بودند پس تبل کوچ بزدند و شیپور بدمیدند و رایات برافراختند. شرکان به فراز اسب کوه پیکر نشسته، وزیردندان نیز سوار شد. رسولان پیش افتاده همی رفتند. شامگاهان در جایی فرود آمدند و شب را در آنجا به سر بردند. چون روز برآمد سوار گشته به راهنمایی رسولان همی رفتند تا بیست روز راه به روز بیست و یکم دو سه پاس از شب رفته به مرغزاری رسیدند شرکان فرمان داد که آنجا فرود آیند و سه روز راحت یابند سپاهان فرود آمدند و خیمه‌ها بزدند و به چپ و راست پراکنده شدند وزیردندان با رسولان ملک افریدون نیز در میان لشکرگاه فرود آمدند و اما ملکزاد شرکان سواره بیستاد تا همه سپاه فرود آمدند چون آن سرزمین سرحد روم و مملکت دشمن بود ملکزاده لگام اسب سست کرده در اطراف موکب همی گشت و همی خواست که پاسبانان بگمارد تا اینکه چهار یک شب بگذشت شرکان مانده گشت و خواب بر او چیره شد در خانه زین خوابش برو بود و اسب او را به سوی بیابان برد. به بیشه‌ای رسید که درختان انبوه داشت و شرکان بیدار نشد تا اینکه اسب شیه کشید و سم بر زمین کوفت آنگاه ملک زاده بیدار گشت و خیشتن را در میان درختان یافت و ماه را دید که طالع گشته و پرتو آن جهان را فرو گرفته چون خود را در آن مکان بدید به وحشت اندر شد و حیران بیستاد و راه به سوی ندانست و به چپ و راست نظر همی کرد. به روشنی ماه مرقزاری دید خرم و آوازی ملیح و صدای خندهی بشنید که هوش از تن و عقل از سر می برد. آنگاه به سوی آواز برفت و به دانسوی مرغزار رسید. نظاره کرد. در آن مکان نهرهای روان و درختان سبز و مرغان نقم سنج دید به که شاعر گفته تبل اتار است گویی در میان گلستان تخت بزاز است گویی در میان لالزار از زمین گوی برآوردند گنج شایگان در چمن گویی پراکندند در شاهوار پس شرکان نظر کرده در آن مکان دیریو و در پهلوی آن دیر قلعه‌ای دید که سر به آسمان می‌سود و در میان دیر نهر آبی روان بود که به سوی مرغزار همی آمد و در آنجا ده تن از کنیزکان ماه روی دوشیزه دید که خیشتن را به زیورهای گران آراسته اند و در حسن و دلبری چنانند که شاعر گفته اینان مگر ز رحمت محضا فریده اند کارام جان و مونس دل نور دیدند لطف آیتی است در حق ایشان و کبر و ناز پیراهنی است بر قد ایشان بریدهاند. رزوان مگر دریچه فردوس باز کرد که این هوریان به ساحت دنیا خزیدهاند. پس شرکان به آن دخترکان نظر کرده در میان ایشان دختری دید ماهروی و مشکین موی به که شاعر گفته ماند به سنوبر قد آن ترک سمن بر گر سوسن آزاد بود بار سنوبر آن سوسن آزاد پر از حلقه و زنجیر وان حلقه و زنجیر پر از توده انبر در دیده من رشته گوهر بگسسته تا دیده امن در دهنت رشته گوهر شرکان شنید که آن پریروی با آن کنیزان گفت بیایید که تا ماه ننشسته با یکدیگر دیگر کشتی بگیریم ایشان تک تک همی آمدند و کشتی همی گرفتند پریپیکر بر ایشان چیره گشته بازوان ایشان با زنار فرو می بست تا همه را بازوان ببست آنگاه پیرزنی که در آنجا بود رو به آن زهر جبین کرده چون خشمگینان گفت ای روس بی از چیره شدن بر دخترکان شادانی و فخر همی کنی من زنی هستم پیر و ناتوان و شهل کررت بیشتر با ایشان کشتی گرفته غالب گشته ام. اگر تو را نیز با من قوت کشتی گرفتن است پیشای تا برخیزم و سرت را به میان هردو دو پایت فرو کنم دخترک سیمتن از این سخن به ظاهر نرم نرم بخندید ولی اندرونش پر از خشم شد برخاسته با او گفت ای خاتون من ذات و دواهی تو را به مسیح سوگند میدهم که به مزاح سخن گفتی یا با من سر کشتی گرفتن داری عجوز گفت به راستی سخن گفتم و مزاح نکردم با تو کشتی بایدم گرفت چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است.